بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّوا الله على سیدنا و نبینا عبد القاسی محمد وعلى اهل بيته الطهرين المأصولين سیم و بقیه الله في العزین روحی و عربه والعالمین له الفضل با تعریف بر خدای متعال و به بیامان جرامی و اهل بیته طهار علیکم السلام جلسه 29 و نهم از جواد یال سطح قبایل فکسیه شروع کن. در الگویی که آقای عبدالمجید سوسوی بر اساس فقه موازنات در فضای معاصر مطرح شده ایشا نسبت به دیگران ترش کرده در سه دسته تضاحم مساله و مساله مفاسد و مفاسد و مساله و مفاسد هفت الگو رو به ترتیب هفت مرجح رو به ترتیب آوردند اول ترجیح اعلی حکمن دوم ترجیح اعلا رتبتن سوم ترجیح اعلا نوعن چهارم که وسط قرار میگیره ترجیح اهم مثلحتن یا اهم مقصدتن یا اهم از مثلحت مقصدت هر کدام باشه پنج ترجیه اکبر هما قدرن بود ششم اطول هما زمنن هفتم آکد هما تحققن این هفته رتبه نو اهم اکبر و قدرن اطول و آکد و تحققن نقط زدیم در اون متن ارسالی خدمت شما سعی کردیم اون رو تر در نظر بگیریم هر نکات مثبتش رو ببینیم که سعی کرده اصل نظم بخشی گذاری برای حرکت بین اینها که اگه فرض تصاوی باشه بعد میره برد به بعدی و همیطور ویژگی های دیگه که بود و این مد نظر بود در نقدش یک محوری رو گفتیم ازتراب در نسبت سنجیه بین مرجعات حکمی با دیگر مرجعات یعنی اگر شما مرجع حکمی رو اول کار قرار دادید خب بعدی ها آیا متفاوت از مرجع حکمی هستن یا اونها باید نشانه باشن در واقع شاخصی برای همون مرجع حکمی باشن بنابراین همه اونها باید از سنخ مرجع حکمی باشن مثلت مقصده ما جدای مجزا از حکم رو نباید در نظر بگیریم قرار ما ترجیح دو حکم رو داشته باشیم یکی از این دو حکم تضام پیدا ده مسال و مقصد باید مرجع باشه برای یک حکم دومی لذا استراقب در این نسبت سنجی رو بردیم خب مواردی رو بردیم در اون جایی که تساوی وجود داره یه جاهایی گفتیم که ها بعد فرض تصاوی اگه باشه باید بریم سراغ تغییر نه اینکه بریم سراغ موجه بعدی چرا چون که ایشون به هر حال حکم محور نیومده شان که اگر حک محور خلاص مرجهات رو مرتب میکرد خلاصه می توانست این الگوور رو در نظر بگیره اما چون که این کار نکرده نکرده خلاصه مرجحات حکم ایشان با روی کرده حکمهبرانه مرجحات رو مرتب نکرده لذا اگر میتوانه نه، اگر با روی کرده مزبور میپرداخت می در واقع میتوانست این الگو رو در نظر بگیره و به تساوی دو حکم برسه لابلای فرمایش دو معمولا میبینید سه دومی نقدی این بود که خوشبینی افراتی دارن نسبت به امکان شراخت منجهات سهوتی کلن فضای اهل سنت یه مقداری مصلحت محورانه که رفتن افتادن در دام تشخیص مرجحات سروتی که مال عالم جهله اما این خوش، خوشبینی افراطی نسبت به توانمندی ذهنی و ابزارهای خلاصه معرفتی نقد چهارم این بود که آقا این ذوابت افکانه رو شما فقط پشت سر ضعیف کردید اثباتش نکردید نکته دیگه این بود که دوستان روی این تاکید داشتن واقعیت بیرونی پیچیدتر از اونیه که شما دارید در نظر میگیدید شما ساده سازی کردید محدود انگاری کردید واقعیت بیرونی رو فرض های دیگه هم وجود داره ترجیه یک طرف بر طرف دوم ترجیه طرف دوم بر طرف اول فرض تساوی، خب این ستار در نظر گرفتیم اما چند مورد دیگه ما میشه اضافه کنیم یک طرف از چند حیث بر ترجیح داشته باشه مورد دوم این که ترجیهات چند حیثیتی یا دو حیسیتی داشته باشن دو طرف یا این که بگیم چند مورد از دو یا چند برعکس این نکته دوم. چند مورد از دو حیثیت یا چند حیثیت از آن پیدا کنند خب این خیلی فرض پیچه تریه چارم ترجیات از حیث های مختلف میتوانه خلاصه وجود داشته باشه و بعد نکته پنجم که در این مورد پنجم صورت پنجم که شما باید لحاظ کنید چند حیثی بودن موارد خارجی پس آقا شما واقعیت بیرون ساده سازی کردید سه فرض گرفته این و بر الف بر ب ترجیه داشته بشه یا ب بر الف ترجیه داشته باشه یا تساوی در صورتی که در عالم بیرون فقط این سه فرض نیست بسیار مختلف دیگه هم هست نقد ششم اینکه شما در مثلا رتبه نوعی یه خلائی هم هست اونجا اون خلا رو رفت نکردید مثلا تضاغم خود فرد با دیگران خب اینجا احتمالات مختلفی از آیا حتما باید ایسار کنه؟ آیا دیگران رو بر خود ترجیح بده ایسار کنه؟ یا نه خودش رو بر دیگران ترجیح بده مطلقا؟ یا یه احتمال ترجیح خود بر دیگران به صورت مطلق؟ احتمال دوم ترجیح مطلق ترجیح مطلق دیگران بر خود فرد یا تفصیل خب در کجا مثلا تفصیل بده بین موارد مقصده موارد ضرر یه جایی ایثار یه جایی غیر ایثار خب پس یکی از ششمین نقد این بود که خلد در رتبه نوعی وجود داره شما اونجا خلا رو رفت نکردید اونجایی که شما میگیدید نو مساوی باشه خب رتبه مساوی باشه بعد میریم سراغ نو خب ممکنه خود و دیگران هم باشه دومین مصداق مثل نقض و, و کم بود و خلا اینه که یک نفر با چند نفر تضاهم پیدا کنه خب کدام رو میخواید اهم رو که میگفتید تا... چار رومین زابطه که میگفتید اهمه آیا به صورت مطلق اهم رو ترجیح میدید برای یک فرد میگی اون سن... اونا سه نفر یه نفره خودش چند فرض ای... یا اینکه یک نفر رو بر چند نفر ترجمه بدید یا تفصیل قائل بشید این هم پس دوم برقی مسادیق تضاهم نوعی هم شفاف نیست مثلا تضاهم حفظ دین داریم حفظ دین خود یا دین دیگران تضاهم بین مال خود یا مال دیگری بعد مال فرد خودش رو نسبت به دیگری در اموال ترجیح بده خب اینو چیه؟ ببینید مثلا یه جایی مصادیق دیگر هم اینطوری میشه ما پیدا بکنیم که در اون موارد بعدی که شما دارید میگید میگید اکبر و قدرن پنجمین رتبه خب اینجا آیا میتوان در این مورد مثلا ترجیحه بین خود و دیگران به اون اکبر و قدرن مراجعه کرد یا نه بعد در تضاهم بین خود و چند نفر یه جاهای یه اپامایی وجود داره واقعا در اذهان عمومی ترجیح خود بر دیگران در آیا شفاف یک نفر چند نفر یک به چند در نظر بگیریم یا ترجیح دیگران بر خود حداقل یه جاهای عرفی مقدار تمایل به خود داره پس اینم ششمین دست از نفت که خودش چند مورد جزئی داشت گفتیم آقا در رتبه نوعی که شما گفتید اگر رتبتا مساوی بودن میریم سراغ 9 خب در این مورد 9 ابهام داریم این ابهامای چند تا در ترتیب برخی از انواع این هفتمین دست از نقد برخی از انواع ابهام داره گیم خب یه نوع دینه حفظ دینه حفظ جانه حفظ ماله خب مثلا آیا حفظ دین مطلق یا بعضی جای حفظ دین به حفظ جان برمیگرده مثل جان پیامبر این حفظ دینه پس کامل در واقع در واقع حفظ دین به صورت کامل از حفظ جان خلاصه مجزا نیست و خلاصه دارای مرز شفاف نیست بعضی مصادیق خلاصه اینگونه است حفظ دین میتوانه با حفظ خلاصه مال جدا باشه حفظ جان ولی امر اینم هم همینطور پیامبر نیست امام نیست ولی امر ولی آیا این مصداقه حفظ دین نیست یه جایی حفظ جان بلکه از مسلمانان معمولی هم میتوانه جوز حفظ دین باشه مثلا میان کشتار میکنن خب از اون وعدد مقابل این کشدار مسلمانان به معنای مقابل و از بین بردن دین میتوانه باشه خب، یک جای با فرض تفاوت نوعی بین مساقیق یک رتبه این نکته مختزی اینه که ما جایگاه و اونها رو در نظر بگیریم آیا امکان تفصیل نیست جان خود و مال دیگران جان خود و مال خود اینا رو باید اینا در یک رتبه از مستاقه ببرشه. در این انواع یه تداخلی میتوانن داشته باشن ابهام مستاقه در ترتیب برخی از این انواع ای خب اگر ما برخی از این مسادیخ رو قبول نکنیم اون ترجیح مجبور در قلگوی دکتر عبدالوجید و به هم میخوره ممنون میشه این پس هفت دست نقد دست ششام نقد این که این چهار تا زابطی اخیر اون قبلی ها یه میخوری جایگاه نو و رتبه شفاف بود میگفتیم آقا رتبهش بالاتره خب اون ضروریه این تحسینی این حاجیه باشه بعد میرفتیم در میان نوفل جون قبول داشتیم که مثلا حفظ دین مقدم و حفظ جان حالا این نفت های موردی میخواییم شفافترش کنیم اما این چهار دستی بعد اینها رو چه کار میکنید؟ اینجا زوابط چهاردوانه اخیر ترجیه اعم، ترجیه اکبر و قدرن ترجیه اول و زمنن ترجیه آکد و تحقیقن به چه دلیل این ترتیب درشون باشه؟ آیا نمیتوانیم تغییر بدیم؟ پس نهخت های جزی داریم چرا اهم و مقصد غیر از اینکه که اینا اثبات نشده بدون دلیل نمیشه در بعضی موارد اپنامی هم داریم مثلا اگر یه مورد عموم و باشه آیا باید بر اکثر و مقصدتن ترجیح پیدا کنه یا بلعکس اینا رو به چه دلیل اونجایی که مورد نقد در واقع از این مستاهای جزئی برای اثبات دشواری دشوار بودن اثبات این زوابط شاربانه اخیر و ترتیب اونها در واقع اه اه اه ترتیب در زوابط اینها مختزینه اینه که ما بینیم مثلا اونجا که خسارته آیا در او اکثر و مفصدتن اینجا در بحث تقسیم خسارت هم میام مثلا ما یه پولی میخوایم بدیم به بعضیا ها نگاه کنیم بگیم این اکثر و مقصدتنه ما به یکی کمتر بدیم به یکی بیشتر بدیم تو تقسیم قنائم یا منافع حاصله آیا واقعا باید اهم رو ترجیح بدیم بر اکبر قدرند ممکنه بگیم نه خواه یکی درسته مثلا شما آمدید اول گفتید ترجیح اهم بعد این چهارم روه بعد می‌رسیم ترجیح اکبر و قدرن این بردی خدا میگه که آقا شما به هر کدام به جای این که به هر کدام مثلا هزار تومن به عنوان به این 20 نفر بدید من زرد که خیلی معتنابهی دیدم من زندگیم ساقط شده این یکی ملیونی که به اونها روی بدید بدید من حتی من احیا بشم خب طبقه این بیان عرفی در واقع ترجیح اکبر و قدرن میتوانه مقدم باشه بر ترجیح اعن ولی شما برکس رو اردید یه موقع هم کنیم بیایم قلب تفصیل بشیم مثلا در مقصده این موارد رو بیاندازیم جلو در مسلحت حرف شما درست باشه یعنی این الگویه هفگانه در مقوله سه نوت هزام ثابت فرض شده آیا نمیتوانیم بین این را تفکیق قائل بشیم آیا اگر این طور باشه خب پس اینم نقد هشت هشتمین نقد اساسی ما نقد نهم عدم شفافیت یا عدم لعاظ محیارهای کیفی مثلا ما الان بحث عزت آبرو استقلال اینا رو در این جایگاه اصلا نمی بینیم مگر اینکه شما ارجاع بدید به اونها بگید که اون اونجایی که ما گفتیم اکنوان مثلا این عزت آبرو استقلال بله اونجا خب، در واقع ما یه ابحام اینطوری هم می توانیم پیدا کنیم در مقام عمل نقده در واقع بعضی مسادیق رو پیدا کنیم امکان کفکی بین سه دست تزام ممکنه در ظابط گذاری ممکنه خلاصه محل داشته باشه به چه دلیل شما خلاصه الگوی ثابت برای هر سه دسته ارائه دادید مثلا ممکنه برفض در مفاسد یک نوع داشته باشیم مثلا ترجیح اکثر و مقصدتا بر اعم و مقصدتا مثلا ممکنه مقدم بشه البته این همهش فرضه و الله باید اثبات شرعی بشه الان اینا هم اثبات که نشده اداستو و تطبیق داده امکان داره در مفاسل ترجیح اکثر و بر عمو ماکسرتان مقدم شه خب. در در اثباتی ها در تضاوم مثلا مف... مساله امکان داره الگوی مزبور جواب بده چرا چون که میگیم آقا این سوده این غنیمت به همه به آدم بیشتری بدیم بهتره به یکی زیاد ندیم الباقی ببیننم به بیشتری ها بدیم ولی خلاصه تفصیل قائل بشیم خلاصه این تفصیل رو امکان تفصیل در ضابط گذاری خلاصه جای بررسی داره یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم در مفاسد یک جور تزاهوم مفاسد با یکدیگر یه اولگو ما یه جایش با هم فرق کنه در تزاهوم بین مسالح با یکدیگر یه مجور در تزاهوم بین مفاسد و مسالح به نوع دیگر به نوع دیگری مثلا وقتی میگن در المفصد او اول اولام جلب المفصده مثل هم قاعده در, در المفصده ممکنه چه اختزایی داره؟ اختزای قاعده در المفصده چیست؟ البته بحث حالا در المفصده جایه بحث داره که علمای شیعه هم یه نخت دارن اینو جدا حس در مجموع نخت های جور نقدهای جوری ما داریم الان یه بحث این اون نقد قبلی بود که بحث خلاصه این که شما بین اینها یک جلسه برگزار کردید شما شفافیت خلاصه اینجا نقد هشتم در واقع باید تکمیل بشه این موارد رو شما دارید چه کار میخواید بکنید از اون طرف نقد دسته نهم چی بود اینکه الان اشاره کردم اینکه شما یه مشکل اساسی دارید اینکه این, این معیارهای کیفی جانمایی نشده عدم جانمایی معیارهای کیفی مگر با ارجاع به در واقع اون نکتهی بود که گفتیم ترجیح به نوع باشه به ترجیح نوعی بود اما اینجا هم بازی ابهام داره ابحامی در در واقع میارهای فراشخصی اون موارد خیلی از مسادیقش شخصی بود خب ما اینجا که میگیم محیارهای کیفی در واقع اینم باید معلوم بشه محیارهای جمعی مثل همین ارز و آبرو شخصی رو داریم جمعیش هم داریم استقلال وطن استقلال کشور ارز و آبروی کشور ارز و آبروی نظام سیاسی خب این هم باید معلوم بشه نکته اساسی نقد دهم ما این بود که به ذوابت سروتی و جعلی شما بیشتر مهربانی دادید. خب شما اینجا باید برید سراغ ذوابت اثباتی این معیارهایی که گفتی طراحیش قشنگه اما مستند شرعی باید بشه. در واقع تعبیر دیگه از این نقد دهمینه که نیاز به استناد به شاره در پیشنهاد مرجحات اینها پیشنهادی هستند که از کجا آوردید شما باید استناد به شرح داشته باشید مسئلهتون ترجیحات عقلی هم باید سازگاری با شهر داشته باشه تقابل نداشته باشه از اون طرف ترجیحات عقلی اگر ناسازگاری نداشته باشه سازگاری داشته باشه اما حجیتش چیه؟ نیازمند در واقع اثبات حجیته یا باید قطعی باشه یا از اون طرف تمسو که به در واقع اون کل محقق قاعده ملازمه داشته باشه تمسک به قاعده ملازمه خلاصه این رو کمک بکنه به هر حال باید خودجیتش در بیارد در مجموع نقد دخوم اینه که آقا معیارهای سبوتی زبابت سبوتی که فقط شما برید به عالم جن و یه تصویر سازی بکنید در واقع تصویرسازی نسبت به مرجعیات کافی نیست بلکه باید شما بیاید اثبات بکنید حتی اونجایی که میخواد شما عقلی هم بگید با یه بیان فنی باید اون رو اثبات بکنید صرف اینکه بگید عقل توانمندی داره کافی نیست در واقع صرف تمسک به دلیل اقل کافی نیست نیاز به توجیه مرجه عقلی داریم باید دقیق معلوم بشه واقعا اقل قبول میکنه یا نه اگه اقل قب... قبول کرد چه جوری به شعر نسبت بدیم؟ خب در قدم اول ما باید بریم اگه میخوایم در مول زبابت اثباتی باشیم اون روش شناسی که همیشه ما بحث رسالش میکنیم اول تمسک به تصریحات اینجا هم اولویات و مرجحات رو باید بریم مرجحات سریع رو پیدا کنیم خدمت آقای دابودی هم هستیم انشاءال این رو تکمیل کنیم دو سه آخر رو اگر قراره بریم سراغ مرجحات اثباتی اول مرجحات سریع و منصوص رو پیدا کنیم یه جایی مرجحات منصوص نیست و سریح نیست این رو استنباطی باید درش بیاریم اشکال نداره بریم مرجح اثباتی رو استنباطی رو مثلا در بیاریم مثل قرائنی مثل شدت وجوب و حرمت در قدم بعد بعد مرجحات منصوص و اثباتی رو توقع بندی کنیم و همینطور اثبات در واقع اثبات اولویات و مرجحات در واقع بگیم غیر استمباطی عقلی و غیر شرعی عرضم در اینجا در واقع این بود که ما بازخانی کردیم مرور چون این بحث های مقداری، این قسمت بحث یکی بار ما مرور کردیم فکر میکنم مرور کردنش از این جهت مهم بود که یک الگوی جدی ما نیاز داریم اگر بخواد شما مسائل سیاسی مسائل غیر سیاسی رو داشته باشیم باید یه مقداری نکات رو بازخانی بکنیم تازه ببینید این الان یه مقداری به یک منو کلیات عبالبغاز قدم اوله تازه ما میکفتیم چه زبابتی بعد مهم اینه که اگر شما خواهی فقه و کار کنید با یه کار تلاش اشتهادی نیاز به در واقع طبیعین مصداقی نظام اولدیات و مرجحات که این رو بعد جدا عرض بکنون بحث بشه تحقیق بشه آجاهای ابراهیمی در خدم هستیم در دوستان دیگه فرمایش دارن همون صوتی بفرماین اگه پیام بدید من ممکنه پیام ها رو نبینم ببینم اپمه شما عرض کنیم در اینجا یک مسیح مروری کردیم هر موقع سوات برقرار شد من در خدمه هستم این هر کدام از بزرگواران سواتی دارد آیا پرامی بفرمید خوب نکته اساسی یکی از بزرگواران این الگو رو که من طرح کردم یک الگویی که حالا یکی از عزه فایل رو در بحث من گرفته بودم ازشان جناب استاد خدمت شما از کنم ای ای یادم برد. یکی از اساتید اقتصادی و فقهی آمده بودن در نظام‌های مختلف بببینید اون قسمت اول رو تکیه کرده بودن حاج های احمد حسین یوسفی که عضو بهیت علمی پیجوشکا هستند پیجوشکا جنابزاد رشده هستند ایشان برای مجموعه تشخیص با این الگوی مثل سنجی، آمده در طراحی نظام مسالح رو کردند. حالا من باید فایلش رو به گردم پیدا کنم الگویی که ایشان داشتن این بود که برای هر کدوم از نظام ها اون قسمت اول و دوم و این دو قسمت دوم و سوم رو برجسته کرده بودند یعنی اون قسمت ضروریات و تحسینیات و حاجیات رو متوا به تعبیر دیگه در واقع مصالح ضروری مسائل مسائل له گوشایش به جای اون حاجیات تعبیر خوبی گذاشته بودند که مقداری ادبیات ما هم با ادبیات اهل سنتم متفاوت بشه بود. و یه سری هم رفاهیات خب این الگو رو به این صورت تصویر کرده بودند که در هر کدوم از نظام ها ما یه سری مثلا نظام اقتصادی نظام سیاسی یک سری مساله مربوط به اون مجموعه رو داریم در اون مجموعه در واقع استادی یوس... احمد... احمد علی یوسفی پیشان به عنوان استاد اقتصادی آمده بودن گفته بودن مثلا نظام اقتصادی یک اهدافی داره اهداف کوتاه مدت به بچه اهداف نهایی اهداف میانی و اهداف نزدیک و قریب اهداف بگیم مقدماتی و نزدیک خب هر نظامی در واقع هر نظامی از نظامات دینی و نظامات اینه بیرونی حاوی در واقع این اهداف هست خب حال ما باید چیکار کنیم در مقام تزاهن ایشان آمده بودن تعیین گونه تقریر کردند، الگوی جناب استاد احمد علی صفی این گونه است که در مقاله برای مجله تشخیص نظام خب در تضاحم میان اهداف پایین‌تر با اهداف بالاتر کدام مقدمه اهداف بالاتر مقدم خواهند بود یعنی چی؟ یعنی اگر اهداف نهایی با اهداف میانی تضامون پیدا کنه، کدام مقدمه اهداف نهایی؟ اهداف میانی و اهداف مقدماتی کدام اگه تضامون پیدا کنن؟ کدام مقدمه اهداف میانی مقدمه بر اهداف مقدماتی و نزدیکه؟ خب این اهداف در واقع همون مقاصد تعبیر عربیش میشه مقاصد، تعبیر فارسیش میشه نهایی. مقاصد نسبتش با مساله چیه؟ مساله مقصود میشه مقاصد مساله که مرده اعتبارند در واقع شبیه اون مساله ضروری و حاجی و تحسینیست یه مقداری خب شباهت داره در واقع این حلقو شباهت دارد با ترجیح در واقع بالگووی در با دو ضبطه در واقع ترجیح رتبه و ترجیح نو اگر یک چیزی ضروری باشه میره اون سطح بالاتر. اگر دو مورد هم رتبه باشند مثل حفظ مثلا هر دو از سخ حفظ دین باشند. هر دو بخشی ضروری باشن میریم سراغ نوعش میگیم ترجیح نوع حفظ دین است یا حفظ جان یا حفظ عقل خب اینجا هم اینشان یه مقید شبیه این رو بیان فرمودند که در واقع در تزامهوم میانه هر اولا نظامات مختلفی ما داریم به تعبیر از جنوب استاد رشاد بیسه هفت استاد رشاد بیسه هفت نوع بیسه هفت نظام رو تصویر فرمودند خب چند نوع نظام رو با دو سه دستبندی اینا ضرب میکنن یک نوع دستبندی نظام ارتباطیه نظام های ارتباطی که چندگانه است ارتباط با خدا ارتباط با خود ارتباط با خلق و ارتباط با طبیعت این چهار نوع نظام اینا نظام های ارتباطی در دو دست نظام های دیگه هم داریم اینا زرد میشه اجمالاً به سه نظام میشه خب ما هر کدام از این نظام ها رو یه مرحله جدا میگیریم در واقع رفع تزاهون در دو قالب انجام میگیره یکی رفع تزاهم در داخل یک نظام دوم چیه رفع تزاهم در میان نظامات خب اینو که ما ارز کردیم هر نظامی اهداف خاص خودش رو داره این میشه در داخل یک نظام خب مرتبه بعد میرسه بین دو نظام، سه نظام پس اگر مساله مربوط به یک نظام در سطح میانی باشه تضام داشته باشه با اون بلگوی بالاتر اهداف نهایی کدام مقدمه؟ اون اهداف سطح بالا در بین پس رتبه کردن شبیه ضروریات و حاجیات و تصدیلت ایشان اینجا بردن اهداف نهای میانی مقدماتی خب حالا اگر تضاهم بین دو نظام باشه در تضاهم میان دو نظام موردی مقدم می شود که رتبه بالاتری داشته باشد یعنی چی؟ یعنی اگر در به تعبیر دیگه اهداف مقدماتی نظام یک با اهداف میانی یا نهایی نظام دو تضامن پیدا کنه اونی که رتبش بالاتره چیه اهداف نهایی بالاتر از میانیه میانی بالاتر از مقدماتیه اون که رتبش بالاتر باشه ترجیح پیدا میکنه خب شما باید ببینید مثلا در نظام اقتصادی اون اهداف نهایی چیه؟ اهداف نهایی نهایی هر نظام ولی در مجموع مجموعه نظامات هم یه اهداف کلام مشترک و عام دارن اینجا مثلا بگیم حفظ رفاق در اگر بریم سراغ اقتصاد طبیعتا ایجاد رفاه، در مقایسه با رفع ضرورت ها رفع نیاز ضروری و اساسی قابل مقایسه نیست به تعبیر دیگه به تعبیر دیگه ایم، خلاصه ایم، ایم، ایجاد رفاه امریم دارای حسن خوب مصلحت داره است که مسلحت لزومی ندارد اما رفع نیازهای ضروری ضروری اقتصادی در واقع ضرورت مصلحت لزومی دارد و رتبتن بر خلاصه ایجاد رفاه باید مقدم شود اس اگر مثلا شما الان میبینید در یه شهری آقا هزار نفر گرسنه‌ن آیا این پول رو ببریم ما بدیم که دو نفر مثلا در خونه‌شون گل بکاریم یا بریم رف اون نیاز ضروری و رف فقر بکنیم رف فقر به ویژه رف فقر عمومی فقر عمومی مسئله لزومی داره رتبتن بر ایجاد رز رفا مقدمه یعنی چی؟ یعنی یه مقداری اون جایگاه متفاوته بنابراین در قلگوی رفع تزاهون مسلحت چی ایجاب میکنه؟ اونی که مسلحت رتبش بالاتره باید قفاوت قائل بشیم بینی اون که خلاصه رتبش پایینتره و ما می توانیم اون رو مؤخر کنیم و به هر حال یه قسمت رو باید ترجیح بدیم بر موارد دیگه خب بعضی از شاید شما مقاله های زیادی کتاب ها و پاینامه های زیادی در مواند مساله به نگارش در آمده. خب اینجا شما باید چه کار بکنید مصلحت فرد و جامعه رو باید مقایسه کنید ولی نکته اساسی اینه که شما ببینید کدام مقدم کدام ترجیح داره و مساله فرد و جامعه رو چه جوری باید مقدم بکنیم من البته حالا این الگوی که جناب استاد یوسفی احمد علی یوسفی داشتن رئیس انجمن اقتصاد و زم بودن ایشان بخوام تفصیل بدم بعضی بیانات هم دارم بعضی مقدمات دارم مثلا یه نکته اینه که چون که فایل ما من اجازه ندارم خدمت دوستان بدم فقط بعضی کلیاتش رو خدمت دوستان عرض میکنم اناوینی که باید فقیم اونها رو دستبنده کنه عناوین شرعی عناوین عرفی و قلای عناوین عرفی تکوینی از عناوین اعتباری حالا با به عنوان مقدمات عناوین عرفی انتزائی عناوی و عناوین عرفی خاص خب اینا رو تفکیک فرمودن اناوین ارزش مدار رو جدا در نظر گرفتن بر اساس این الگویی که دارن من حالا اون قسمت رو شفایی ارث کردم این قسمت ها خب اهداف خورد و کلام و شریعت رو هم می باید تفکیک کنیم ما در واقع اگر بخوایم به یک الگوی شایسته برسیم باید ببینیم روی کرد اسلامی و غیر اسلامی هم چیه مسئلات فرد و غیر فرد رو ما همه رو در نظر بگیریم خب ایشان میان بحث رو از مسئلات جامعه معطوفش میکنن به هدف میفرمائند که سعادت هدف نهایی آفرینشه بعد میان حال الگوهای معاصری که دارند اینطوری تفسیر میکنن. سعادت چیه لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و علم در زندگی است که شامل زندگی دنیا آخرت میشه در بحثشون جناب استاد یوسفی آمدند یه نگاه غربی رو بررسی کردن، نگاه اسلامی رو بررسی کردن، این تعریف از سعادت خلاص در واقع خواستن بگن در رقابت با اون اندیشه‌های لیبرالی که سعادت رو به جور دیگه تفسیر میکنن این گونه میتونه باشه. لذت بیشتر و پایدار، هم ایجابی و هم سلبی و دوری از رنج و علم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و میشه. بعد از بحث خب این سعادت شد هدف آفرینش محوریت بحث رو پس آرام آرام میدن به هدف بعد این جمله رو هم میارن که از جناب مصباح همین رو اختباس میکنند هدف بقیه فعالیت ها میتواند مقدمه برای هدفی بالاتر باشد لذا برای این اساس ما آمدیم گفتیم که آقا اهداف رو توقع بندی کنیم اهداف نهایی، اهداف متوسط و میانی، اهداف مقدماتی لذا از جناب... کتاب اخلاق در قرآن نهای طلب مصباح میارن هدف برخی فعالیت ها می تواند مقدمه برای هدف بالاتر باشد شما ببینید مثلا یه دبیرستان تحسیس می کنید برنامه آموزش رو پژوهش دارید این ها یه داره و یه مراهلی داره بعضی از کار را خیلی کار رو انجام می اما بعضیش مقدمه برای کارهای دیگه است. اگر یه دو سه دقیقه استراتی بفرمایید الحمدالله رب بله